توی که بر سر خوبان کشوری چون تاج سزد اگر همه دلبران دهندت باج دو چشم شوخ تو بر هم زده خطاب و هبش به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج بیاز روی تو روشن چو آرز رخ روز سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج. دهان شهد تو داده رواج آب خزر لب چو غند تو برد از نبات مصر رواج از این مرض به حقیقت شفا نخواهم یافت که از تو درد دلی جان نمی به علاج چرا همی شکنی جان من ز سنگ دلی دل زیف که باشد به نازکیچ و, و زجاج لب تو خزر و دهان تو آب حیوان است قد تو سرو و میان موی و بر به حیعت آج فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی کمین ذره خاک در تو بودی کا.